شامس قونیه محرم 643 این همه ترس و وهم و من انسانهایی پیدا میشوند سی روز ماه رمضان را روزه میگیرند عید که شد برای کفاره گناهانشان گوسفند هنابسته سر میبرند به حج تمتع و عمره می روند. روزی پنج بار سر به سجاده می گذارند، اما در دلشان نه جایی برای محبت است، نه جایی برای مرحمت. مرد حسابی پس برای چه این همه زحمت میکشید؟ مگر بدون دوست داشتن و دوست داشته شدن می شود ایمان آورد؟ اگر عشق نباشد، عبادت هم کلمه‌ای خشک و خالی می‌شود عبارت از پنج حرف کنار هم نشسته پوستی بی‌مقص انسان باید با عشق و در عشق ایمان بیاورد باید در رکایش عشق به خدا و انسانها را حس کند گمان می‌کنند آفریدگار جایی آن بالا در آسمان‌هاست بعضی ها هم در مکه و مدینه به دنبال او می گردند. یا در مسجد محلهشان مگر خدا در یک مکان می گنجد. چه قفلتی او تنها در یک جاست در دل عاشقان از این رو چنین گفته است نه آسمان می‌تواند دربرگیرد در برگیرد مرا نه زمین فقط و فقط در قلب بندگان مؤمنم می گنجم. این ابله را ببین میخواهد با خدا معامله کند یعنی تو الان هر گونه خباست را در ذهنت بپروران پشت سر این آن قیبت بکن به ناموس مردم چشم داشته باش حق را ناحق بکن به محض خارج شدن از مسجد نمازی را که خانده ای فراموش بکن، بعد هم خیال بکن با دو تا گوسفند قربانی کردن و چهار تا دعا از ورخاندن همه چیز درست می شود. اگر پاک کردن قلبت را نمیدانی بیهوده وضو نگیر. آفریدگار من تاجر نیست که با امثال تو تجارت بکند. آفریدگار من بقال نیست که گوشه ای از دفترش ستون گناه داشته باشد و گوشه ای دیگر ستون سواب بعد هم این دو را از هم کم کند و حسابت را در بیاورد نه در یک دستش ترازو است برای کشیدن نه در دست دیگرش قلمی برای نوشتن. پروردگار من از این حساب‌های پست منسع است او زیبایی پرشکوه نوری بی پایان، مرحمت و رحمتی بیکران است از چه رو بط یا الله بپرستم پروردگار من همیشه زنده است اسمش های از چرو میان تأیید ها و من ها و زن ها و حساب ها بمانم؟ پروردگارم بسیار دوست دارنده است. اسمش ودود. چطور میتوانم پشت سر دیگر انسان ها بدگویی کنم اگر باور داشته باشم که خدا هر لحظه همه چیز را میشنود. اسمش رقیب. تا هنگامی که پاهایم توان داشته باشد نفسم براید و فرو برود و قلبم بتپد برای ستایش او ترانه میسرایم و پای میکوبم دایره می شوم و چرخ میزنم مادامی که از روحش در من دمیده است من هم در هر نفسم او را یاد میکنم نفس خود را خرد کنم تا هنگامی که ذره‌ای در بینهایت حبی در عشق و گردی در امارت موعظمی شوم که او برساخته. با شور و اشتیاق و ثبات قدم به طرف او خواهم رفت. نه فقط به خاطر چیزهایی که به من ارزانی داشته بلکه به خاطر چیزهایی که از من دریق کرده نیز شکر خواهم کرد چون تنها اوست که میداند چه چی چیز به صلاح من است قاعده 24م حال که انسان اشرف مخلوقات است باید در هر گام به یاد داشته باشد که خلیفه خدا بر زمین است و طوری رفتار کند که شایسته این مقام باشد انسان اگر فقیر شود به زندان افتد آماج افترا شود حتی به اصارت رود باز هم باید مانند خلیفه سرفراز چشم و سیر و با قلبی مطمئن رفتار کند شریعت میگوید مال تو مال خودت مال من مال خودم طریقت میگوید مال تو مال خودت مال من هم مال تو معرفت میگوید نه مال منی هست نه مال توی حقیقت میگوید نه تو هستی نه من متعصب ها به آن که خود را در عشق خدا فنا کنند و با نفس خود جهاد کنند همیشه با دیگران می جنگند و از نسلی به نسل دیگر تخم ترس می پاشند. اگر انسان بدبینانه نگاه کند به همه جا طبیعی است که همه جا بدی ببیند. هرگاه در جایی زلزله یا خشکسالی شود نشانهی قذب غضب خداوند می شمارند که آشکارا گفته است رحمتم از غضبم فزون است با این حال می و نظاره می کنند می حق انتقامشان را بگیرد زندگیشان پر است از کینه و خصومت نامهربانی ابر سیاهی است که رویشان را پوشانده مبادا درختها باعث شوند جنگل را نبینی به آیهای تنها قناعت نکن باید جزها را در پرتو کل خواند و کل در جوهر پنهان است متعصب ها به جای آن که جوهر و کل قرآن را دریابند به یکی دعای بسنده می کنند. به دستورهایی اولویت میدهند که گمان می کنند با ذهنهای ستیز جوشان سازگار است مدام برای همه نطق می کنند روز محشر که برسد باید از پل سرات بگذریم که از مو نازکتر و از تیغ تیزتر است. گناهکارها که نمی توانند از پل بگذرند، به پایین به چاله های جهنم سقوط می کنند و در آنجا تا ابد عذاب میکشند. آنهایی که با فضیلت زندگی کرده اند به آن طرف پل می رسند و تا ابد در باغها با حوری ها به سر میبرند چیزی که از آخرت میفهمند خلاصش همین است. یا از جهنم میترسند یا منتظر پاداش در بهشتم. حالان که اصل عشق خداست این را فراموش می کنند. قاعده بیست و پنجم فقط در آینده دنبال بهشت و جهنم نگرد. هرگاه بتوانیم یکی را بدون چشم داشت و حساب و کتاب و معامله دوست داشته باشیم در اصل در بهشتی. هرگاه با یکی منازعه کنیم و به نفرت و حسد و کین آلوده شویم با سر به جهنم افتاده‌ایم. مگر ممکن است جهنمی بدتر از عذاب مردی باشد که گناهی بسیار بزرگ مرتکب شده و وجدانش مثل موشی گرسنه مغزش را می جود. از آن مرد بپرس تا برایت بگوید جهنم چیست. یا مگر ممکن است بهشتی بالاتر از استقنای مردی باشد که خیرش به انسانها میرسد؟ به جای شکستن قلبها در تسکین قلبها میکوشد توانسته حلقی از زنجیر محبت باشد و با نکه انگشتانش رازهای کائنات را لمس می کند از آن مرد بپرس تا برایت بگوید بهشت چیست چرا اینقدر به بعد از مرگ می اندیشی؟ تنها زمانی که می توانی به درستی وجود یا عدم وجود عشق را در زندگیمان درک کنی هم اکنون است. راهنمای عاشقان آشقان نه ترس از جهنم است و نه اشتیاق پاداش بهشت. آنها در دریای بیکران لدن شناورند. تایفه صوفیان عاشق خدایم. این عشق بیواسته است، بی پیچ و خم، بی چشم داشت. آه من عشق، قبل از عشق، بعد از عشق. عشق قدیمترین و پابرجاترین سنت روی زمین است. آشق رانده می شود، اما نمی راند. آشق آزار می بیند، اما آزارش به مورچه هم نمیرسد آشق که شدی میفهمی دلت به کیسهای مخملی تبدیل میشود درونش گلولهای ابریشمی با این دل نازک نمیتوانی کسی را برنجانی به سف اشاق میپیوندی نترس در عشق که فنا تعاریف ظاهری و مقوله های ذهنی دود می شود و میرود به هوا از آن نقطه به بعد چیزی به نام من نمی ماند تمام منیت می شود صفری بزرگ آنجا نه شریعت می ماند نه طریقت نه معرفت فقط و فقط حقیقت است که می ماند دیروز که با مولانا درباره این امور صحبت می و می اندیشیدی یک باره چشمانش را بست و این ابیات جاری شد از آن لبهای عزیزش چه تدبیری مسلمانان که من خود را نمیدانم، دانم نه ترسا نه یهودیم نه گبرو نه مسلمانم نه شرقیم، نه قربیم، نه علویم، نه صفلیم، نه زرکان طبیعیم، نه از افلا که گردانم. دویی را چون برون کردم، دو عالم را یکی دیدم، یکی بینم، یکی جویم، یکی دانم، یکی خواهم. مولانا میگوید از من شاعر در نمیآید. راستش از شعر خیلی خوشم نمیآید. حالان که شاعری در درون دارد، آن هم چه شاعر توانایی برای پاره کردن پیلهش آماده می شود. را دیر زمانی است برون کرده. آنچه در نظر دیگران جدا جداست، در نظر او تک و واحد است آری حق با مولاناست او نه شرقی است نه غربی اهل دیاری کاملا دیگر است جزو ملتی کاملا جدا ملت عشق